حکایت، درویشی را ضرورتی پیش آمد، گلیمی از خانه یاری بدستید، حاکم فرمود که دستش بدر کنن، صاحب گلیم شفاعت کرد که من او را بهل کردم، گفتا به شفاعت تو حد شهر فرو نگذارم، گفت آنچه فرمودی راست گفتی، ولی کن هر که از مال وقف چیزی بدزدد قطعش لازم نیاید ول و لا یملک هر چه در بیشان راست وقف محتاجان است حاکم از او دست بداشت و ملامت کردن گرفت که جهان بر تو تنگ آمده بود که دزدی نکردی الا از خانه چنین یاری گفت ای خداوند، نشنیده که گوگند خانه دوستان بروب و در دشمنان مکوب، چون به سختی در بمانی، تن به اجزن در مده، دشمنان را پوست برکن دوستان را پوستین.